نام خداوند بی اندازم حربان نهاویت بارش حرس عبزونی در مال و سروت شما را از آخرت غافل گردانی تا اینکه که قبرها را دیدید نخیر چنین نیست به زودی حقیقت را خواهید دانست نخیر باز هم چنین نیست به زودی حقیقت را خواهید دانست نخیر اگر علم یقین را می این روش را اختیار نمی کردید یقینا آتش دوزخ را می بینید سپس آن را با چشم یقین می بینید پس در آن روز دربارۀ نعمت‌هایی که بر آن احکا داشتید پرسیده خواهید شد